فصل ششم نخستین روزهای درخنشینی کوزیمو هیچ برنامه مشخصی نداشت هر آنچه می‌کرد با انگیزه شناسایی و تملک قلم روش بود می‌خواست هر چه زودتر مرزهای آن قلمرو را بشنازد همه امکانات آن را بداند هر درخت و هر شاخه آن را کشف و از آن خود کند از همین رو، پیاپی او را می دیدیم که از بالای سرمان می و حالت بهوش و آماده جانوران وحشی را داشت که حتی هنگامی که کز می کنند و نمی جنبند آماده خیزش و پرشند. چرا پیوسته به باغ خودمان می آمد. با دیدن او که همواره در میدان دید دوربین مادرمان از درختی به درخت دیگر می میشد می شد چون پنداش که نیروی برنگی زنده او و وسوسی همیشگیش همان شورش علیه ماست. و همواره میخواهد ما را بیازارد و خشمگین می کند میگویم ما به این خاطر که هنوز نمیدانستم درباره من چه فکر می کند؟ هر بار که به چیزی نیاز داشت چون این مینه که با من هم بسته است اما گاهی دیگر چونان از بالای سرم میگذشت که انگار مرا نمیدید حقیقت این است که باغ ما تنها گذرگاهی برای او بود آنچه را او به سوی خود میکشید دیوار کنار ماگنولیا بود در هر ساعت روز او را میدیدیم که پشت آن دیوار ناپدید میشد. حتی هنگامی که دخترک هنوز از خواب بلند نشده بود و حتی هنگامی که گروه عمه ها و خاال و خدمتکاران او را به درون خانه برده بودند. در باغ خانه ریوالونده شاخه های درختان به خورتوم فیل های افسان ای میمانست. برگ های بسیار پهن بریده برید به شکل ستاره روی زمین پهن بود. و رنگ سبزی چون پوست مار داشت. خیزران‌های زرد و سبک با باد موج میزد و صدای کاخذ می‌داد. نیازی تبالود کزیما را به سوی آن سبسی بی‌همانند. آن روشنایی شگرف که از لابلای شاخسار میتاوید و آن سکوت غریب میکشند. در آنجا خود را به حالت سرنگون از شاخه بلندترین درخت باغ میاویخت و باغ باشگوون جنگلی میشد. نه جنگلی زمینی که دنیایی نادیده و ناشناخته. سپس ویولت تا پدیدار میشد. شد. کوزیمو ناگهان او را بالای تاب می دید که می کوشید آن را به هرچه بالاتر برساند. و یا بر اسب کتولهش سوار بود. گاهی از دور دست باغ آوای شیپور شکار به گوش کوزیمو می رسید. خانواده ریوالونده هرگز از تاخت و تاسهای دخترک نگرانی به خود راه نداده بودند. هر بار که او پیاده قدمی می زد همه امها و خاله‌هایش همراه او بودند. اما هنگامی که سوار اسب می شد، هیچ کس کاری به کارش نداشت. از آنجا که زنها سواری نمی رهایش میکردند می که به هر کجا می خواهد برود. وانگهی، دوستی او با دسته ولگردان آنچنان نشدنی می نمود که هیچ کس حتی فکر آن را به خود راه نمی داد. در عوض، همه زنان خانواده خیلی زود، متوجه نوجوانی شدند که بالای درختان خانهشان جا خوش می کرد. و در همان حال که به ظاهر کوچکترین اعتنایی به او نداشتند در کمین او بودند برای پدرمان قصه‌ی ناشی از نافرمانی کازیمو و کینه دیرینه به خانواده ریوالونده در هم آمیخته و یکی شده بود میشد گفت که درش میخواهد همه مسئولیت ماجرا را به گردن آن خانواده بیاندازد انگار آنان بودند که پسر او را به باغ خود می‌کشاندند پذیرایی میکردند و دلگرمیش میدادند که شورشی بازی در بیاورد. از همین رو روزی بران شد که برای شکار کازیمو به عملیاتی نه در باغ خودمان که در باغ ریوالونده دست بزند. و برای نشان دادن دشمنیاش با خانواده ی همسایه خودش رهبری عملیات را به دست نگرفت تا نیازی نباشد که خودش نست آنان برود و بخواهد که پسرش را به او بازگردانند. چونین درخواستی با آنکه بیجا بود، به هر حال برقراری نوعی رابطه احترام‌آمیز را ایجاب می کرد. از این رو گروهی از خدمتکاران را به سرکردگی جناب وکیل اناس سیلویوس کارگاه به سراغشان فرستاد. خدمتکاران ما مسلح به نردبان و ریسمان به در خانه ریفالون رفتند. جناب وکیل با قبا و فینه پوزشی خواست و منمن کنان خاستار اجازه ورود به باغ شد. کاران ریوالونده در آغاز پنداشتن که قصد آن گروه بریدن شاخهایی است که از دیوار به آن سو رفته است. اما با دیدن جناب وکیل که در جای یورت په و نکه شاخه ها را نشان میداد، و جویده جویده می گفت می, می پرسیدند چه فرار کرده؟ توتی؟ جناب وکیل شتاب زده گفت پسر فرزند پسر بزرگ انگاه نردبانی را به تنه یک درخت بلوط هندی تکیه داد و خودش از آن بالا رفت کوزیمو بالای یکی از شاخه های این درخت نشسته بود و بیخیالانه پاهایش را تکان میداد. ویولتا نیز انگار نه انگار که خبری باشد در یکی از کوره های میان درختان چرخ بازی می کرد خدمتکاران ما ریسمانی را به دست ان آستادند که گویا بنا بود با آن برادرم را بگیرند اما هنوز جناب وکیل به میانه نردبان نرسیده بود که کوزیما به نوک درخت دیگری رفت. وکیل نردبان را پای درخت دیگری برد و سپس چهار پنج بار دیگر آن را جابجا جا کرد. هر بار چند بوته گل را له می کرد و هر بار برادرم با دو جست خود را به درخت دیگری می رسند. گروه خاله ها و امه ها ناگهان از راه رسیدند و ویولتا را بردند و در جایی دور از آن ناخوشایند در را رویش بستند قزیمو شاخه ای را شکست. آن را در هوا تاب داد و سوتی زد. مارکی ریوالانده با حالتی شاهانه پا به درگاه ویلا گذاشت و گفت آقایان محترم، نمی توانید این شکار را در باغ خودتان ادامه بدهید؟ لباس راحتی به داشت و سربندی یونانی به سرش بود که او را به گونه غریبی شبیه جناب وکیل می کرد. سپس گفت خطابم به همه خانواده لاورز دورون دوست و با گفتن این جمله دستش را با حالت برازند در هوا چرخاند. به گونه ای که هم به بارون کوچولوی بالای درخت هم به امو و همه خدمتکاران و هم به همهی آنچه در آن سوی دیوار از آن ما بود اشاره می کرد. کار که به اینجا رسید ان آسیل کارگاه یک بار تغییر داد جستان و خیزان خود را به مارکی رساند و به گونهای که انگار هیچ مسئله‌ای در میان نبود، من, و من کنان به بحث درباره فواری آبگیری پرداخت که در آن نزدیکی بود و گفت که ناگهان به فکر ساختن فواری افتاده است که بسیار بلندتر و زیباتر خواهد بود و با دستکاری کوچکی میتوان آن را برای آبیاری نیز به کار گرفت. بدین گونه اموی من یک بار دیگر نشان میداد که هیچگاه نمیتوان رفتارش را پیش‌بینی کرد. و هیچ کاری را نمی تواند به او واگذاشت پدرمان او را با مأموریتی مشخص و با انگیزههای کاملا تحریک آمیز به سراغ همسایه‌ها فرستاده بود ولی او چنان خودمانی با مارکی گپ میزد که گویی میخواست با او دوست شود به ویژان که جناب وکیل تنها زمانی سر و زباندار میشد که برایش سودی داشت و این درست در هنگامی بود که به او به خاطر کم حرفی و ترشروییش اطمینان میکردند از همه بدترین که مارکی به گفته های او گوش داد. چیزهایی از او پرسید و او را به تماشای همه فوارها و آبگیرهای باغ برد. شانه به شانه هم میرفتند هر دو جامعه های بسیار گوشادی به تن داشتند و از این گذشته همقدر هم بودند تا جایی که میشد یکی را به جای دیگری گرفت. دو گروه خدمتکار نیز دنبالشان میرفتند که برخی از آنان نردبانی به دوش داشتند که نمیدانستند با آن چه کنند. در این حال کوزیمو با خیال آسوده بر فراز درختان نزدیک پنجره‌های ویلا از شاخه‌ای به شاخه‌ای می‌رفت و می‌کوشید اتاقی را که ویولتا در آن بود پیدا کند سرانجام اتاق را یافت و بلوتی را به سوی شیشه پنجره‌ی آن پرتاب کرد پنجره باز شد و دخترک موبور سر بیرون آورد تقصیر توست که مرا اینجا اند. پنجره را بست و پرده‌ها را کشید بازی ما یک بار دوچار درماندگی شد خشم برادرم به راستی نگران کننده بود هر بار که خشمگین میشد به دویدن میپرداخت. اگر به توان جست و خیز در میان زمین و آسمان و روی شاخه های پست و بلند گوناگون را دویدن نامید به نظر ما می که هر لحظه ممکن است پایش بلق زد و بیفتد اما هرگز چنین چیزی پیش نیامد می جهید. و با شتاب روی شاخه کجی می دوید. به هوا می و یک باره در شاخه بلندتری چنگ می‌زد. زد. چار پنج پنجست دیگر میزد و ناپدید میشد. کجا می رفت؟ آن بار از درختی به درختی رفت و سرانجام به جنگل رسید. نفس زنان ایستاد، چمنزاری زیر پایش بود، باد تندی می‌وزید و موج سبزی را در میان علفهای تیز و نازک. می دواند. از کلاف نرم نک ساقه هاقاصدک به هوا میرفت کاجی تنها و دست نیافتنی در میانه چمنزار افراشته بود و سیبک درشت و دراز داشت داکوب با پرهای بلوطی لک لکه پیرامون درخت پرپر میزدند و روی شاخه های پر از سوزنک مینشستند گاهی دمشان را هوا میکردند و سر را پایین میگرند تا به سیبک ها نک بزنند همان نیاز رخنه به درون دنیایی دست نیافتنی نیازی که برادرم را به پناهادن در راه شاخساران انبوه کشانده بود هنوز او را وسوسه میکرد هنوز او را وا داشت که برای فرونشاندن آن اتش سیری ناپذیر در جستجوی دستیابی هرچه بیشتر بر آن دنیا باشد دلش میخواست با هر برگ هر تنه درخت هر پر و هر آواز بال پرنده پیوند داشته باشد این همان عشقی است که شکارچی به هر موجود زنده‌ای حس میکند و برای بیان آن به شیوهی که ویژه اوست تفنگش را به دوش میاندازد کزیمو که هنوز به وجود این عشق پی نبرده بود میکوشید با پیشروی و جستجوی سرسختانه در میان درختان آن نیاز را برآورده کند جنگل انبوه در هم پیچیده بود کوزیمو با کمک شمشیر راهی برای خود میگشود اندک اندک وسوسه‌ای را که در سر داشت فراموش کرد و فکرش به دنبال مسائلی رفت که یکی پس از دیگری به سراغش می‌آمد و ناشی از ترس او از دور شدن از جاهای آشنا بود ترسی که نمی‌خواست به آن اعتراف کند اما به هر حال حس می‌کرد بدین گونه همچنان که از لابلای شاخه‌ها پیش می‌رفت ناگهان چشمش به چشمان زردی در روبرویش افتاد که به او خیره شده بود شمشیرش را رو به جلو گرفت شاخی را پس و سپس آن را آهسته آهسته رها کرد آنگاه نفس آسوده‌ای کشید و از ترس خودش به خنده افتاد آن چشمان زرد از آن ای گربه بود گربه را بیش از چند لحظه ندید اما تصویرش در خاطر او نقش بست چیزی نگذشته بود که کزیما از ترس به لرزه افتاد زیرا آن جانور گرچه به هر گربه دیگری میمانست گربه ترسناک و هراس آور بود که دیدنش مو به تن راست می‌کرد چرا؟ مشکل میشد گفت. پوستی خط خط داشت و بیش از اندازه درشت بود. اما مسئله این نبود. چیزی که مایه وحشت از او میشد تارهای سبیلش بود که از راستی به تیغهای جوجه تیقی میماند. نفسش چونان هور داشت که انگار بیش از آنکه شنیده شود دیده میشد. نفسی که از میان دندانهای تیز نیشگونش بیرون میزد. گوش های بسیار تیزش مانند شغله افراشته بود و موهای روی آن تنها ظاهری نرم داشت. پشم تنش سیخ بود و در پیرامون گردنش باد میکرد و به رنگ بور در میآمد. خط, خط روی شکمش چنان لرزشی داشت که انگار هر کدام از خطها خط دیگری را نوازش دمش چنان راست و افراشته بود که طبیعی به نظر نمی رسید. این همه را کازیما تنها یک لحظه از پس شاخه دیده و سپس شاخه را رها کرده بود که بیفتد اما افزون بر آن چیز دیگری نیز بود که کزی فرصت دیدنش را نیافت، اما به خوبی حدس میزد. دسته موهای بیش از اندازه درازی که چنگال های گربه را می چنگال برای دراندن آماده برای چنگ زدن در او. و او همچنان چشمان زرد و گربه را میدید که در چشم خانه سیاهش می چرخید و از لابللای برگها او خیره بود. و آنچه شنید دست کمی از این نداشت. قررشی که هرچه ترس نادتر و هرچه بلندتر میشد، بدون شک سر و کار با جیان ترین گربه وحشی آن جنگل افتاده بود. همه ی ها و هم, هم ها خاموش شد و گربه وحشی خیز برداشت. اما به سوی پسرک. رو به بالا جهید و جهش کما بیش عمودیش چنان بود که کازیما را بیش از آن که بترساند به شگفتی انداخت. پس از آن بود که تازه ترس بر او چیره شد و این هنگامی بود که گربه را در شاخه درست بالای سر خود دید. آن بالا نشسته و خود را جمع کرده بود. کوزیمو شکمش را می‌دید که پشم‌های بلندش به سفیدی می‌زد. پاهایش راست بود و پنجه در شاخه فرو کرده بود. پشت خم کرده بود و فیف فیف می‌کرد و آماده می‌شد که به سوی او بجهد. کوزیمو با حرکتی غریزی پس نشست. خود را به شاخه پایینترری رساند. گربه فیف فیف کرد. با هر فیف خیزی بر می داشت. به راست و به چپ میرفت تا هموار بالای سر کزی باشد برادرم پیاپی پس میرفت تا سرانجام به پایین ترین شاخه آلش رسید جهش به زمین خطرناک بود اما بهتر از آن بود که آنجا بماند تا جانور آن آوای شکنج که آمیزه ای از قررش و میو, میو بود به پایان برد و سرانجام به جان او افتد. کوزیما یکی از پاهایش را بلند کرد تا بپرد. اما پنداری دو غریزه در درونش کشمکش داشت. یکی نیاز طبیعی به دور شدن از خطرگاه و دیگری خودداری سرسختانه از پا گذاشتن به زمین حتی اگر به بهای جانش تمام شود. دو دل بود. و گربه آن هنگام را برای جهش مناسب دید. خیز برداشت و گلوله ی از پشم و چنگال همراه با سوت و گررش بر سر کزیما فرود آمد. تنها حرکتی که به فکر پسرک رسید این بود که چشمانش را ببندد و شمشیرش را رو به جلو بگیرد. اما این حرکت ای بود که گربه به راحتی از پس آن برآمد. روی سر به سرک پایین آمد با این خیال که او را همراه خود به زمین بیاندازد. چنگالش گونه ی کزیما را درید. اما او برای آنکه نیفتد در شاخ چنگ زد و خود را به پشت انداخت و پاها را به شاخه فشرد. گربه انتظار حرکتی درست عکس این را داشت. این بود که به گوشه پرد شد و پایین افتاد. برای اینکه به زمین نیفتد در شاخی چنگ زد و در هوا چرخی. کوزیمو از همان لحظه بهره گرفت و با حرکتی تند و پیروزمندانه شمشیرش را تا دسته در شکم جانور فرو کرد. قربه شکم دریده با تمام نیرو نرسد. کزیما زنده و آلود بود. جانور وحشی مرده و به شمشیر آویخته بود، انگار که به سیخ کشیده شده باشد. زخم گونه کزیما به شکل سه خط موازی از چشم تا به چانش کشیده شده بود. از زور درد و از خوشی پیروزی نعرزد از خود بیخود شده بود و شاخه درخت و شمشیر و لاشه گربه را به خود می فشارد دست خوش شور و حیجان شگرفی بود که آدمی پس از نخستین پیروزی بزرگ زندگیش حس می کند هنگامی که بهای پیروزی را می شناسد و می داند که از آن پس باید پیگیرانه بر یک راه پیش رود و حتی فکر شکست را نپذیرد چون این بود که چشمم به کازیمو افتاد که از لابلای شاخه ها می آمد. بالا پوشش قرق خون بود. نوار گیس بافتش از هم باز و کلا گوشش مچاله شده بود. جانوری را از دن به دست داشت که دیگر چیزی بیش از یک گربه نبود. به دو به ایوان رفتم تا ژنرال را خبر کنم. داد زدم. مادر جان زخمی شده. پرسید. زخمی شده؟ چطور و درجا به سراغ دوربین رفت گفتم زخمی مثل زخمی ها گویا عبارتی که گفتم به نظر ژنرال بسیار زیرکانه رسید چون دوربین را به سوی کوزیما نشانه رفت که چابکتر از همیشه روی شاخه ها می جهید. و در تایید گفتم گفت جنگ شده است بیدرنگ به تهیه روغن و مرهم و وسایل زخم بندی برداخت. انگار که باید آنها را به مسئولان بهداری گروهانی میرساند و آنها را به من داد که برای کوزیمو ببرم. بیان که لحظی این امید را به خود راه دهد که شاید پسرش بران شده باشد که برای درمان خود به خانه بازگردد. بسته یه دارو را گرفتم و به دو به باغ رفتم و زیر درخت توت نزدیک دیوار ویلای ریوالونده منتظر ماندم اما کوزیمو خود را به ماگنولیا رساند و ناپدید شد. همچنان که جنازه دشمن را در دست داشت، پیروزمندانه در آن سوی دیوار پدیدار شد. اما جلوی ویلا چه خبر بود؟ کالسکی آماده سفر بود و خدمتکاران چمدان ها و بسته را بار آن می‌کردند. در میان گروه بزرگی از خدمتکاران و امه ها و خاله های سیاه پوش و ترش رو، ویولتا دیده می شد که لباس سفر به داشت و مارکی و مارکیز را میبوسید. کوزیمو گربه را که از دم گرفته بود به هوا پرتاب کرد و به صدایی بلند گفت ویولتا کجا می روی؟ همه ی نگاه ها به سوی او برگشت که لباسش پاره پاره و خونآلود بود. لاشه گربه ی مرده را در دست داشت و به دیوانه ها همه یک که خوردند. باز هم که آمدی آن هم با این و وس. و خاله ها و امه ها شتاب زده دخترک را به سوی کالسکه بردند. ویولتا با سر برافراشته برگشت و با لحن برازنده و نخوت آلودی که هم خطاب به پدر و مادرش و هم شاید خطاب به کوزیمو بود گفت میفرستندم به شبان روزی؟ جواب برادرم را به این صورت میداد سپس به سوی کارسک رفت و سوار شد بیان که حتی نیم نگاهی به کوزیمو و شکارش بیاندازد. دریچه های کارسک بسته شد. راننده در جای خود نشست. کوزیمو باورش نمی شد. باز کوشید ویولت تارا متوجه خود کند به او بفهماند که آن پیروزی خونین را به او پیشکش می کند چگونه آن را بیان کند و فریاد زد در جنگ با گربه پیروز شدم شلاق صدا کرد دستمال زنها تکان خورد و کالسکه به راه افتاد صدای ویولت از درون کالسکه شنیده شد آفرین به تو روشن نبود که این را در ستایش او می گوید یا مسخرش می کندند. این چونین به هم بدرود گفتند. بیتابی و هیجان زدگی کاسیمو درد گونه زخمیش، سرخوردگی از اینکه نتوانسته بود از آن پیروزی کوچک افتخاری به دست آورد. نامیدی ناشی از آن جدای ناگهانی همه و همه دلش را به درد آورد و به گریه انداخت در همان حال که زار زار میگریست. صدای شکستن شاخههایی بلند شد و فریاد زنها به گوش رسید که به فرانسه می‌گفتند بیرون بیرون ولگرد وحشی از باغ ما برو بیرون همه خدمتکاران ریوالونده به سوی او دویدند تا از باغ بیرونش کنند کش به دست داشتند و برخی دیگر سنگ می‌پراندند کوزیمو همچنان که گریه میکرد و ناله میکشید لاشه گربه را به سوی خدمتکارانی که پای درخت گرد آمده بودند پرتاب کرد و آنان لاشه را برداشتند و روی تله پهن انداختند پس از آنکه از رفتن دخترک همسایه با خبر شدم چند روزی امیدوار بودم که کوزیمو پایین بیاید نمیدانم چرا چنین میپنداشتم که تصمیم شگرف برادرم به ماندن بالای درختان دستکم کم تا اندازی آن دخترک بستگی دارد اما چنین نشد برعکس این من بودم که از درختی بالا رفتم تا برای او وسایل بندی ببرم و او خودش زخمهای چهره و باسفانش را تیمار کرد سپس از من ریسمانی خواست که سرش چنگک داشته باشد می‌خواست بالای درخت زیتونی برود که به تله پهن باغری بلونده با نزدیک بود و لاشه گربه را بردارد پوست گربه را کند و تا آن که از دستش برمی‌آمد آن را دب باقی کرد و برای خود کلاهی ساخت و این نخستین کلاه سلسله کلاه های پوستینی بود که در سراسر زندگی به سر میگذاشت.